منم که گوشه میخانه خانقاه من است دعای پیر ورد صبحگاه من است گرم ترانه چنگ سبوه نیست چه باک نوای من به سهر آه اوز خواه من است زپاد شاه و گدا فارغم به هم دل گدای خاک در دوست پادشاه من است قرض مسجد و میخانم وصال شماست جزین خیال ندارم خدا گواه من است مگر به تیغ عجل خیمه برکنم ورنی رمیدن از در دولت نرسم راه من است از آن زمان که بر این آستان نهادم روی فراز مسند خورشید تکیه من هست گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش گو گناه من هست